دفعه دویست و میان دود چپق و تریاد بخار سماورهای بزرگ نور دوتا زنبوری و نفس و سر و صدای سلوات مردم و موج صدای نقال و کلمات عربی و فارسی قاطی جاوید همه چشم جا چشمنداخت کسی را که میخواست نمیدید اما یک گوشه چهره غمناک آشنای دیگری را پیدا کرد صاحب چهره تعذیعی و غمناک روی یکی از تختها ها چون نشسته بود چرت میزد. جاوید به او اشاره کرد. صاحب چهره تکان نخورد. توی چرت و نشه باقی ماند. جاوید و اشاره های جاوید را ندید. چشم های لون به سوی او خیره بود. او را نگاه می کرد. اما اثر چرس یا بنگ یا چه که می گفتند او می کشید، او را در گوگیجه و حفرود شناور ساخته بود. جاوید یواشکی دست او را گرفت تکان داد. از او خواهش کرد یک آبخوردن بیرون بیاید گفت با او کار واجبی دارد نقال مشغول کشتن سهراب بود و محمدبنگی نمیخواست در چنین لحظه حساسی از مجلس نقال بیرون بیاید اما جاوید به هر حال او را راضی کرد و میان جمع قهوهخانه بیرون لغزاند توی تاریکی و باد سرد کوچه جاوید گفت محمد آقا گوش کن احمد کجاست؟ احمد؟ احمد نیست. کجاست؟ احمد و گرفتن. چرا؟ زندونه. جاوید ناراحت شد. پرسید. چرا؟ چطور شده؟ حبسه مگه نشنفتی؟ زد کریم کچل و کش. همینجا تو قهوه خونه. سر پول چایی حرفشون شده بود. جاوید حرفش را قطع کرد. ممد آقا گوش کن. او احمد زاقی پسر ارزدار قلوملی را میخواست که خانه ابوتراب را خوب بلد بود. گفت تو ابوتراب را که یادت هست. محمد بنگی به دیوار تکیه زده بود. دستمالی که شل دور گردنش ول شده بود از پیراهن سیاهش چرکتر بود. کلاش را خاراند. پرسید کی؟ ابوتراب. تراب که چیه سابق ملک آرا؟ آره با؟ پس نمیشناسم اون نسناس نالوتی رو؟ تو خانه را بلدی؟ شنیندارم پایین تر از میدان اعدام توی پسکوچه ها و گود زنبورک خانه است من خودم بلد نیستم، کارش دارم. کار خیلی واجب و فوری و فوتی با ابو دارم. چشم جاوی چند سال اخیر به من مدبنگی خیلی کمک کرده بود. کوشش کرده بود او اعتیادش را ترک کند تا کاری برای او و با کند. اما محمد بد جوری متاد و مبتلا بود، پس از موردن قلوم علی که ملک آرا آنها را بیرون کرده بود، از آدمهای زندگی گذشته فقط جاوید آنها را فراموش نکرده بود، و پول نظری یا شلزرد نزری هرچه بود می آورد دم خانهشان میداد. محمدبنگی و برادرش احمدزاقی از جاوید جوجوی سابق در این سالها محبت زیاد دیده بودند و به او ارادت خاصی پیدا کرده بودند. محمد بنگی گفت، پس چی که بلاتم، آره چشم؟ جاوید دوتا دهشاهی از جیبش در آورد که دست محمد بنگی گذاشت. گفت، آقایی کن بیا به من نشان بده، من خودم کار شخصی فوری با عبو تراب دارم. محمد بنگی پول را پس زد، چی بابا اختیار داریم، زکی؟ جاوید پول را در درمشده و نگه داشت، بیا، من باید خانه را امشب پیدا کنم. محمدبنگی بنگی به چرت تبدیل شد، گفت، چی؟ امشب؟ الان، بابا اون لامصب این روزها خونه نیست، اگرم باشه الان تا خرخرش خورده، تا حرقومش هم ترگیب کشیده، داره هفتاد تا پادشاه رو خواب میبینه. من همین الان باید ببینمش، بیدارش میکنم. محمدبنگی بنگی کلش رو از روی عرقچین خاراند اونم چند وقت خلق و اخلاقش خیلی تندتر و نهستر شده، اخه وضعش خرابه. چی شده؟ بی پوله، بدهکاره. شازده دیگه به اونم پول نمیده. اصلا بیرونش کرده. الان به این سراغش از خواب براش کنی، خونت پای خودته، نصف شبی. جاوید گفت، بیا، من باید امشب ببینمش. و انقدر راهی هم نیست، فقط من بلد نیستم. محمد بنگی نمیدانست چه کار کند. به دیوار تکیه زده بود. چشمانش باز به هم رفته بود. جاوید دست او را گرفت کشید، با زبان خوش او را راه انداخت، تلو تلو خوران و کجو کله، هر طور بود، از توی کوچه ها آورد. وقتی پسرهای قلوملی را با پسرها و نوه های ملک آرا و نوست و دوله حلال زاده یا حرام زاده مقایسه میکرد چندشش میشد خانههای خانه های پس کوچه های گود زنبورکخانه خانه، راستی و درستی، ته گودال ها و حفره های توی زمین بودند، در سیاهی و کثافت بوی لجن جویهای کوچه ها آزاردهنده بود، همچنین حمله و او, او اوی پلید و وحشی، جاوید و محمد بنگی هر کدام چوبی دستشان گرفته بودند، سگها را چخ و دور می کردند. از توی تاریکی و پستی و بلندی کوچه های کجماوت و, و گوگیجه مغز محمد بنگی یک ساعتی پس و پیش، پیش و پس رفتند، تا سرانجام پس از دو سه بار اشتباه و عوضی در زدن خانه ابو تراب را پیدا کردند جاوید مدتی با مشت و سنگ در زد تا ابو خودش آمد لای در را باز کرد به جز یک شلوار بلند از پارچه سیاه بافی تنش لخت بود سرش هم برهنه بزرگ و قمبلی و تاس و سرخ بود بریش و سیبیل سیاهش که تقریبا تمام صورتش را می در این شب تاریک او را میمون وحشی کتوله و مستیافته و مخوف نشان می‌داد. چاقوی هم توی دستش بود. با صدای گرفته و حلقومی تازه از خواب بیدار شده پرسید، کیه؟ جاوید گفت، منم ابو تراب، جاوید، این هم محمد آغاز. پسر قلوم علی خان، من میخواستم شما را ببینم، کار واجبی دارم، کار فوری دارم. ابو تراب فوش بدی داد. بعد گفت: سگ مصیبا ببین نصف شبی ملت و را کردین، مگه ابنه دارین؟ لا اله الا الله. جاوید گفت: بیا بیرون یه دقیقه. ابو تراب گفت: میام بیرون شیکم جفتتون رو سفر می کنم. جاوید گفت: بیا بیرون. چوب دستش را توی مشتش سفت‌تر گرفت. ابو تراب در را باز کرد. با تلو تلو آمد میان کوچه تاریک با قد کوتوله و شکم گنده عین یک تاپو بود که از وسط خاک شب بد بیرون آمده باشد جاوید از جایش تکان نخورد محمد بنگی حالا دورتر پای دیوار نشسته بود دستش را گذاشته بود روی پیشانیش ابو تراب به جاوید گفت چه مرگته نفسش از عرق و ترشی معده و تریاک بوی گند جهنم میداد. جاوید گفت چند روز بود که نیامده بودی آن طرف ها، امروز غروب فهمیدم موقعش رسیده که من و تو درباره معامله که همیشه صحبتش را میکردیم دست به کار شویم. عبو تراب گفت: «خلی رو داری که این موقع بوق سگ اومدی در خونه رو از پاشنه ورداشتی؟ کار داریم. خیال میکن چون کیا و بیای ملک آرا شدی حالا پخی شدی؟ نه، پخی نشدم. گفتم کار داریم. پد انتر انتره شدی و اون یکی ریقوی بنگی؟ من همون که بودم هستم، با محمد هم کاری نداشته باش، من به زور آوردمش چون راه بلد نبودم، گوش کن ابو تراب، تو پول میخواستی، من حالا پول دارم، آماده است، فردا بیا بگیر و همون جایی را که میدانی نشانم بده، آخرین معامله تمام میشود، اگر فردا صبح نیامدی، فردا شب من خودم یکی از توفنگهای ملک آرارا بر برمیدارم خدمتت می رسم، را منفجر می کنم، این را قسم می خورم. ابو تراب نطقش رفته بود، فقط برای اینکه از تکوتا نیفتاده باشد، با دهانش صدای بدی درآورد اما شلو و بی زهره. جاوید گفت خودت هم تا حالا فهمیدی که من روی حرف و قسم خودم می ایستم. ابو تراب گفت دیویستو حاضر کردی؟ جاوید گفت، سد و شست و پنج دارم، سد و شستش مال تو، پنج هم مال من که خرج سفر برگشتم به یزد باشد، پول آماده است، فردا بیا بگیر، فردا صبح به ظهر نباید بکشد، ابو تراب گفت، گفته بودید دیویست، گفته بودم دیویست، و چهار سال طول کشید، تا صد و شست و پنجش را جمع کردم، اما امروز از سرایه خانم چیزی به من گفت که دیگر صبر و معطلی جایز نیست. گفت چی؟ من حالا مطمئنم که تو آن شب خواهر کوچک مرا را بردی باقه کن. سرای خانم هم مطمئن است. خب که چی؟ شازده دست دور داد گفت ببرمش و تو حالا خبر داری کجاست؟ خب پس چی؟ آب دهانش را گورد داد. خب یعنی همین؟ تو بردیش و حالا هم ادعا می خبرداری کجاست. بنابراین تزیه به آخر رسیده. تمام شده. صبح اول وقت تو میایی در خانه ملک آرا، با هم راه میفتیم طرف بانک. توی خیابان علا است. خودت هم بلدی. پول آنجاست. میگیریم بعد راه میفتیم هر جا تو گفتی. ابو تراب نیشخند حلقومی معروفش را بل کرد. گفت. بگو الله جاوید فریاد زد، من جدی حرف میزنم. زنم. ابو تراب گفت، صدات رو خفه کن، بفهم با طرفی، جاوید جوجو. تا حالا جای صفت نشاشیدی، محمد بنگی از پای دیوار گفت، کارشو راب بنداز ابو ریشو. تو خفه، کارشو راب بنداز ابو ریشو. چند کلوم از ننه عروس بشنو، کارشو را بنداز جاوید به ابو تراب گفت، گوش کن. گفتم ترزییه تمام شده. صبر من هم تمام شده. حالا واسه ای من شاخشونه میکشی؟ من خواهم را میخوام.واسط میارمش. کارشو را بنداز ابوریش. خفه خون بگیر بنگی. یا فردا صبح تو میای پیش من یا فردا شب من میام سراغ تو. خدا نگهدار. ابوطوراب را لخت و چاقو به دست میان سیاهی کوچه تنها به حال خودش گذاشت برگشت. محمد را بلند کرد، او را هر طور بود، از میان دخمه های گرد زنبورک خانه بالا آورد اول او را خانه رساند، بعد خودش به خانه رفت. چهل و نه صفحه دیویست و بیست و شش در زد، لیلا در را برایش باز کرد، نزدیک سحر بود و توی حیات بیرونی ملک آرا، همه جز او و لیلا خواب بودند، او بی حرف از توی حیات تاریک گذشت و به اتاقش رفت. از این اتاق و از این حیات که زشت و بی سلیقه برای کلفت و نوکرها ساخته شده بود نفرت داشت و این چند روزی که به اینجا آمده بودند مشمعز کننده ترین دوران چند سال اخیر بود. دوتا اتاق این طرف حیات دست آنها بود. لیلا از آنها خوشش میآمد و روزی چند دفعه آنها را جارو می کرد. در حالی که در چشم جاوید خاری و ننگ و زجر نوکر ملک آرا بودن، نوکر قاتل پدرش بودن، از در و دیوار آن اتاقها می بارید. دوتا اتاق آن طرف حیات، جفت مطبخ و آبدارخانه، دست شاهباجی خانم آشبز و شوهرش مشدلی بود که نوکر مخصوص و به اصطلاح امین خود ملک آرا بود، و امشب همه خواب بودند. در تاریکی اتاق خودش کلاه و گیبه و کت و شلوارش را درآورد، با صدره و شلوار سفیدش که راحت بود دراز کشید، لیلا هم آمد چراغ را خاموش کرد، گوشه دیگر اتاق زیر لحافش رفت، جاوید مدت زیادی بیدار بود و در تاریکی مغز و افکار خودش را به فردا و به آینده می کشند. با وجود اینکه دیگر کار داشت تمام میشد، نمیدانست چرا دلش آب نمیخورد که فردا کارها به راستی انجام شود و این کابوس پایان پذیرد. اینجا او آنقدر بدی و دروغ دیده بود و آنقدر درد بیهوده کشیده بود که حالا هیچ را باور نمیکرد. و حتی امشب هم, هم به سخته می توانست گشایش کاری را بپذیرد. یعنی میشد فردا افسانه را پیدا کند و فردا غروب از این خانه و از این شهر برود؟ بعد در تاریکی سردی که در اتاق بیرون خودش و لیلا مانند دردهی سیاه و مهم وجود داشت به لیلا فکر کرد. رشتهی که زندگی او و لیلا را به هم پیوند میداد باریکتر تر از موی مرده و به سردی و سیاهی همین اتاق بود. لیلا از او پرسید کجا رفته بودی؟ جواب داد پیش ابوتراب. تراب واسه چی؟ کار داشتم فکر میکرد باید امشب به لیلا میگفت که فردا چه خبر خواهد بود لیلا هرچه بود به عنوان زن او بود او به لیلا قول داده بود که روزی که خواست از این شهر برود تکلیف او را روشن کند وقتی حرف زد انگار با تاریکی حرف میزد گفت گوش کن لیلا زیر لب گفت چیه؟ همیشه با این که از او نفرت داشت از او میترسید. عبو تراب قرار شده فردا بیاید پول را بگیرد و جای افسانه را به من نشان بدهد. منتظر شد که لیلا چیزی بگوید. مدتی سکوت بود. بعد صدای لیلا آمد که خیلی خری چرا انقدر خری؟ جاوید گفت تو هیا خانم دیروز به من گفت که عبو تراب بچه را برده بوده و همه چیز را می داند. کار عبو تراب بوده و عبو تراب خودش هم اقرار کرد. دیگه چی گفت؟ ابو تراب امه. هیچی ولش کن دیگه نرو طرفش گفتم فردا بیاید معامله لعنتی را تمام کنیم قرار شده فردا بیاید اینجا دم در لیلا حرف او را قطع کرد نه فراموشش کن ابو مثل سگ دروغ میگه ولش کن جاوید گفت این تنها راه پیدا کردن افسانه است نه پولت رو میخوره یه آبم بالاش ولش کن دیگه نرو طرفش، اون خائن دروغوی پدرسوخته سگ کسیف ملک آراست همیشه بوده. راه دیگری نیست. از کجا میدونی دونی که زنده است؟ زنده است، ابو تراب گفت خبر داره کجاست، و راه دیگری هم نیست. خب چون راه دیگری نیست تو خیال می کنی این تنها راهه؟ میگم ولش کن، این فکر و خیالها رو از کلت بریز دور، دور، دور، تو اینجا زندگی و آلونکی داری، پول داری، کار داری، مواجب داری. ابو و ولش کن. پیداش میکنم. وزک نمیر بهار میاد، ترتیزه با خیار میاد. جاوید برگشت در تاریکی به او نگاه کرد. لیلا نه برای او، نه برای خواهر او، برای هیچ کس احساس مهر و همدردی نداشت. گفت من فردا با او قرار دارم و دلم گواهی می دهد کار دارد به جاهای آخرش می رسد. اگر رسید یعنی اگر من افسانه را پیدا کردم دیگر توی این حیات پا نمی گذارم. تو سکوت کرد. من چی؟ همیشه گفتم تو حق داری هر کاری می خواهی بکنی. می خواهی با من بیا می خواهی می خراسان یا می خواهی همینجا لیلا تون جواب داد من از هیچ جا تکون نمی خورم. جاوید گفت، حق و میل توست، باشه، در تاریکی هنوز به طرف رختخاب او نگاه می کرد، لیلا حالا سرش را به سوی دیوار برگردانده بود، جاوید مدتی پشت او و رختخاب او را نگاه کرد، باز مانند هزاران بار دیگر که بین آنها قهر و قطع و سکوت افتاده بود، احساس کرد که این بار دیگر پیوند بین آنها برای همیشه بریده و پایان یافته است، بعد لیلا رو به دیوار گفت من با کسی جایی میرم که مرد باشه. مرد. جاوید سکوت کرد. لیلا گفت با کسی جایی میرم که دوستش باشم. جاوید سکوت کرد. لیلا گفت نکه خر ناقص باشه. نه نکه خر دیوونه ی فکر و خیال های باطل کله خودش باشه. هرچی خودش بکنه و هرچی خودش دلش بخواد همون باشه. جاوید گفت بس کن، من حرفم را زدم. خیلی خوب، برو هر غلطی میخوای بکن. هر وقت میخواست بدترین نیشها را به او بزند، او را با نیش اینکه او مردی ندارد میگذید. وقتی میخواست از آن هم بدتر باشد، او را با زهر اینکه دوستش ندارد یا اینکه اگر جاوید حتی مرد هم بود او دوستش نداشت، زخمه میزد. حد آخر زخم های او هم این بود که پندارها و ایمان زندگی او را مسخره می کرد. های زبان لیلا هیچ وقت کمتر از زخم های چاقوی ابوتاراب و نکبت شوم ملک آرا نبود. سکوت کرد. لیلا هم دیگر چیزی نگفت. دستهایش را زیر سرش گذاشت. آه بلندی کشید. ثبر کرد. گذاشت زمان بگذرد. گذاشت تاریکی سیال شب مانند سرطان سیاه روی روانش بلغزد، قطره قطره بگذرد و سپیددم بیاید. پنجاه صفحه دیویست سی. پس از شستشو و نیایش بامدادی، وقتی دنبال نان تازه و شیر و سرشیر برای ملک آرا از خانه بیرون آمد، ابوتراب را در کوچه دید. نوکر کوتوله پشت در بسته باغ نشسته بود. همان قبای خاک و خلی تنش و همان کلاه پوستی هفت سال اخیر سرش بود، با این تفافت که یک کت کهنه هم روی قبای چرک تنش انداخته بود. جاوید به او سلام کرد. گفت خوشحال است که آمده. عبو تراب به جای جواب سلام یا هر سخن دیگر فقط یک بله گفت. پشت سرش را خاراند و گلوش را صاف کرد. جاوید به او گفت صبر کند تا یک ساعت دیگر با هم به بانک می روند. صبح را ترو را انداخت. دو ساعت از روز بالا آمده بود که آمد کتش را پوشید. بخشه قدیمیش را جمع جور کرد. کتاب مقدس خورده و جام پیمانه امویش و سایر کتب و نوشته و اساسه خوردهریز قدیمی را در آن بست و با خود برداشت. آمد با رقیه بگم خداحافظی کرد. بعد به لیلا هم گفت که آماده حرکت است. لیلا جوابش را نداد. یک ایش گفت پشتش را به او کرد و به جارو کردن اتاقش ادامه داد. انگار که چشم سرد او از این هماغت و بیهودگی زیاد دیده است. جاوید به هر حال با او خدا نگهدار کرد. به سایر خدمه اعتنایی نکرد. با ملک آرا هم امروز کاری نداشت. بیرون آمد سراغ ابوتراب. در صورت پف کرده و چشم های خسته نوکر قدیمی ملک آرا امروز صبح همه چیز کهنه و مرده بود. به جز خون تازه برای گرفتن پول های جاوید. جاوید به او اشاره کرد بلند شود، و راه افتادند، از کوچه چاله سال بالا آمدند، از میدان گلوبندک هم که حالا چهارراه گلوبندک شده بود، به سوی شمال آمدند و دست راست به طرف میدان مشق یا میدان توبخانه پیچیدند. در خیابان علا اددوله که حالا خیابان فردوسی شده بود، جلوی ساختمان بزرگ و سنگی بانک، او ابوتراب را لب جوی آب نشاند، خودش وارد بانک شد. تمام موجودی حساب خودش را کشید. معمور بادجه دسته کوچکی از پنج تومانی های سبز و دو تومانی های صورتی نو با تصویر شاه و کلاه پهلوی جلوی او گذاشت. حاصل هفت سال کار و خفت و اصارت او بود. رسیدها و کاغذهای بانک را امضا کرد، پولها را برداشت، از بانک بیرون آمد. زیر آفتاب بهاری در این روز تازه در خیابان ایستاد و وابوترا نوکر قدیمی ملک آرا را که هنوز لب جون نشسته بود نگاه کرد. به توی مشتش هم نگاه کرد. یادش بود که یک شب پاییزی سالها پیش نشسته بود تمام نسب به های فاطمه بگم مرحوم بیچاره را هم با سیریش چسبانده بود و برای رهایی لیلا در دست این مرد گذاشته بود. لیلا که مانند جاوید به دست ملک آرا تباه شده بود امروز هم باید تمام پولهای خودش را در دست نوکر ملک آرا بگذارد برای رهایی افسانه و خدا میدانست که او امروز برای رهایی افسانه آماده بود آمد ابو تراب را صدا کرد پولها را به او نشان داد ابو تراب با اخم دستش را دراز کرد جاوید گفت هنوز نه وقتی من بچه را دیدم ابو با بی گفت نمیشه جاوید گفت این بار هر جور من گفتم بازی میکنیم چی چی؟ او راه بیفت وگرنه پلیس را خبر میکنم و قسم میخورم که خشونت میکنم دادخواهی میکنم صدای مرا در نیار پاش و راه بیفت ابو تراب جازد گفت عیبی نداره همه چیز رو به راهه پاشد راه افتادن ابو تراب کم کم به او گفت که بچه همین جاها در نزدیکی های تهران است گفت بچه در خانه مادر زن پیرش آن طرف شهر نزدیک امامزاده معصوم است بچه سالها بود که اینجا بود حالش هم خوب بود خیلی هم شیرین زبان شده بود ابو گفت خودش هر چند وقت یک مرتبه به دیدن او می برایش لواشک آلو و نخوچی کشمش می چون لواشک و نخوچی کشمش زیاد دوست دارد داوید به حرفهای ابو تراب که از دیدن دسته اسکناس حالا خودش هم شیرین زبان شده بود گوش کرد، کم کم آرام گرفت، روحش از شادی به پرواز درآمد. میخواست همانجا در خیابان تمام اسکناسهای سبز و صورتی را روی سر ابو بریزد و همه چیز را فدای مجدگانی این خبرها و سخنان خوش کند، اما پولها را توی مشتش نگه داشت و آمدند، راه درازی را پیاده پیمودند. از خیابان سپه به سوی باغ سپس پایین به سوی لشگر و دروازه قذبین و انگاه به سوی بیابانهای خالی و خاکی غرب آمدند. دو ته ساعتی راه پیمودند. روز گرم و آفتابی بود و جاوید از شادی دلش پرپر میزد و شانه به شانه ابوتراب تراب میآمد. وقتی از میان بیابان به طرف امامزاده معصوم می آمدند، جاوید برای اطمینان خاطر و ایمنی بیشتر، یک جا چوب دراز و کلوفتی را هم که یک گوشه افتاده بود، برداشت با خودش آورد. و ابوتراب گفت برای چخ کردن سک و پیش خودش گفت شاید هم برای ادب کردن تو، چنانچه یک هو به کلت زد یک چشم از شیرینکاری های سابقت را بازی کنی. اما ابوتراب هم ملتفت بود، و سر به زیر می آمد امروز او رام و موش مرده به نظر می رسید حتی چاقوی خودش را از جیبش درآورد و به زور توی جیب جاوید گذاشت که یعنی خاطر او را از هر لحاظ راحت کند امامزاده معصوم در حقیقت دهکوره کوچکی بود که میان یک دشت باز قرار داشت با چند تا درخت کلبه و باغ با دیوارهای کاهگلی وقتی به ده نزدیک میشدند و در حقیقت از موقعی که از تهران خارج شده بودند، ابوتراب کم کم به جاوید حالی کرده بود که خواهر جاوید در منزل مادرزنش به خرج دایی زنش نگهداری شده بود. ملک آرا همیشه به آنها وعده پول حسابی داده بود. آنها کلی خرج نگهداری و سلامتی و دوادرمان بچه کرده بودند و انتظار پول حسابی داشتند. به جاوید حالی کرد که طی این سالها آنها به خصوص دایی زنش اسدالله خان نسبت ملک آرا و پولی که قرار بود بیاید بدبین و لجباز و پرتبقه شده بود و تقاضای پولهای کلان می کردند. اما ابو میدانست چجوری با آنها معامله کند. قسم خورد که 200 تومانی که خودش اول از جاوید خواسته بود صد و هشتادش مال این اسدالله خان بی پدر و مادر پرتوقع بود. اوایل بعد از ظهر رسیدند. دهکوره کاهگلی امامزاده معصوم زیر آفتاب ظهر خشک و خالی میان دشت پرح شده بود. تک و دهاتی با بزقاله و گوسفند و گاو این طرف و آن طرف به چشمی خوردند. جلوه یک در کوتاه چوبی و پوسیده، ابوتراب تراب جاوید را نگه داشت. در چوبی توی دیوار دراز کاهگلی باق وازی فرو رفته بود. ابوتراب تراب کلش را خاراند و گفت میگم بهتر اول من خودم برم با اصدالله خان حرف بزنم. ببینم مزه زبونش چیه و چند مرده حلاجه. جاوید گفت من باید بچه را ببینم. ابوتراب تراب با حیرت و داد گفت بابا عجب آدم ساده خری هستی، اه مگه اینا آدمن؟ اگه تو رو با این پول و وضعیت ببینن، دندونهای جد و هم میشمرند بچه رو نمیدن که هیچی میبرن هفت سناق قایم میکنن. اون وقت با بیای تا عمر داری بهشون پول اخ کنی، تا عمر داری باید بیاری بدی، تو اینها رو نمی شنسی. تو نمیدونی چه هفت خطای ناجنس و ظالم و ننه جاوید پرسید: پس چیکار کار کنی؟ ها تو همینجا بشین. اون صد و شستم فیلم بذار توی جیبت اصلا قایم کن من میرم تو باهاشون حرف میزنم میگم شازده ورزش خرابه دارن توقیفش میکنن از ترس خونه نشین شده خلاصه اله و بله بعد میگم داداش بچه از دهات اومده تمام ملک و مالش رو فروخته صد و ده تومن آورده آبجیش رو میخواد میگم نداره بیچاره و بدبخته زبونم بلد نیست صد و ده هم به از هیچه و تو هم نیا جلو تو هم اینجا پشت اون سکو قایم شو اگه از الله خان تو رو ببینه که قیافت به پسر های ده میخوره کار زاره دیگه نمیشه باش طرف شد جاوید به او نگاه کرد اینجا بیرون ماندن و سبر کردن با پولها ها بود گفت خب برو هر طور سلاح میدونی ابو تراب گفت جایی نرییا که دهاتی های سکمه سب میکنن. جاوید چوبش را سفت گرفت گفت برو برو من مواظبم عجله کن. ما رفتیم. جاوید با التماس گفت نگاه کن ابو تراب. بچه را یه دقیقه بیار من فقط یک نظر ببینمش. ابو تراب گفت باشه اما اگه این تخمه های بیدین و ایمون فوری نبرم بچه را هفت سلاخ قایمش کن. جاوید گفت برو من می میکنم. ابو یکی یکیال گفت و در را که باز بود فشار داد و داخل شد. جاوید تنها نشست، دستش را روی سینهش گذاشت، هفت سال برای این چنین روزی درنگ کرده بود، سرش را به آسمان بلند کرد، آسمان آبی پاک بود، خورشید نور روشن گرم و شگرفی داشت، مانند روزی که پدر و مادرش و از یزد به سوی تهران حرکت کرده بودند، کوشش کرد چهره افسانه را جلوی چشمش بیاورد فکر کرد حالا چه شکلی شده است دقیقه ها میگذشت اما خبری نمیشد. شد گرچه دلش میخواست اما جرئت نکرد بلند شود وارد باغ شود ابوتراب تراب به او گفته بود بیرون ثبت کند تا او زمینه را آماده کند نمیخواست با ورود دزدکی خودش طرف ابوتراب و احد الله خان را و مادرزن زن پیر ابوتراب را هر که بودند بدبین کند اما اثری از ابوتراب نبود و معطلی زیاد بود و هر لحظه درازتر میشد. بالاخره در باز شد و سر و کله ابوتراب بیرون آمد و خیلی خوشحال نبود آمد چند تا فوش داد و گفت اینها خیلی بالا بالا گذاشتند جاوید با نگرانی پرسید چه شده؟ گفت بابا این پدر پدرسوخته های پدر سوخته و خوردن آبرو رو غی کردند میگن تو به ما گفته بودی ملکارا دیویست میده. از اون پاچه و ها هم هستن. از خان که مثل شمر واسداده و سقه سیاهشو با دیویست برداشتن سند نار کمتر هم پایین نمیاد. آبجیش هم مثل هند جگرخار نق میزنه. جاوید پرسید بچه کجاست؟ «بچه ابو تراب گفت بچه هست ماشالله سر و رو گنده است چقدرم چاق شده هزار ماشالله از خوشحالی لرزید داشت می‌کووید که وارد باغ شود که ابو تراب جلو او را گرفت بابا حوصله کن